بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على أشرف الأنبياء وسيدي المرسلين وأله وصحبه أجمعين أما بعد أهم شيء أن نحسب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدر عظم جلسيه كما ذا خدمة شماسين وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوحش زيادة ما مرور خالدين فندى از زواج رسول الله صلی اللہ علیه و سلم با خدیجه رضی الله عنها و همچنین از قبل از بعتد شروع کردیم تا الان که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به رسالت و قیامبری برگزیدی میشه گفتیم که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم قبل از این مبعوث بشه و مسئولیت رسالت و قیامبری به داده بشه میرفت در غار حرا خلوت میکرد مینشد برای اتکاف حالا کسانی که رفتند غار حرار رو دیدند شاید بدونن چقدر سخته که انسان بره بالای اون کوه خیلی سخته دو شواره یک و دو ساعت وقت میگیره انسان بره بالای اون غار حالا خوبی اون غار اینه که وقتی که میرید بالا در اون بالای سر کوه راحت و قشنگ کعبه پیداست از همون بالا خانه خدا و مسجد الحرام راحت پیداست از اون بالا رسولان صلی الله علیه و سلم برای عبادت می نشستن اونجا. حالا نمیدونیم طریقه عبادت رسولان صلی الله علیه و سلم چگونه بوده. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا می نشستن برای خداوند. تا اینکه در یکی از روزها در روز دوشنبه جبرائیل به سراغ رسول الله صلی الله علیه و سلم می آیند. و رسول الله را الله علیه در آغوش می گیرند و فشارش میدن. بعد جبرایل به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوین اقرح رسول الله جوابش نبید ما انا بخون یه که من نمیتونم بخونم باز رهاش میکنه دوباره او رو میگیره شارش میده میگه خیلی سفت من رو یه گفت گفتم ما انا بقاره من نمیتونم بخونم امیه پیامبری امی سوادی نداشته حالا چرا خداوند خواسته که امی باشه چرا خواسته که سواد نوشتن و خواندن نداشته باشه چون خداوند میدونه که وقتی که به رسالت برگزیده بشه خود به خود میگن که فلان شخص و فلان شخص بهش یادش دادن حالا میاد این مسائل خواهد اومد برای بار دوم جبرائیل دوباره او را فشار میدهند و میگیرند و میگن اقرا بسم ربک خلق تا چند تا آیه از سوره اقرد حب الله صلی الله علیه و سلم نگران میشه حریشان میشه که چی شده چی, چی میخواد رخ بده رسول الله صلی الله علیه و سلم پایین میان از اون بالای کوه بیان به نزد خدیجه رضی الله عنها بعد میبید به خدیجه که چی بهش رخ داده چی شده واقعی خیلی ترسناکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسیده میگه گوشت های بین دوتا هم میلرزید این چنین وس میکنه رسول الله ص می از بس از حیبت اون مقام از بس که وحشت زده شده بودم اومدم نزد خدیجه خدیجه بهم گفت تو, تو سدی رحم را به جا میاری شخص خوبی هستی امینی شخص درستکاری هستی راسگوی این چنین حرف هایی را به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خدیجه یعنی در زمان قدیم این چنین معروف بوده کسی که صادق باشه کسی که خوب باشه جنزده نمیشه جن و سراغش نمیاد حالا این میخواد یک تکلیف نبوده بر رسول الله این چیزی که تو دیدی و فلان و فلان نیست یک ماموریت احتمال زیاد یک مسئولیت خاصی از طرف خداوند بلندش میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می بره پیشه ورقه ورقه ابن نوفل ورقه ابن نوفل قبل نصرانی بوده بعد دین ابراهیم رو انتخاب میکنه مشهور که ورقه بن نوفل از موحدین و رسول الله صلی الله علیه و salam میفرمایند که یکی از بهشتیان ورقه بن چون ایمان میاره و چی به خدیجه که اگر من زنده باشم وقتی که رسول الله را بیرون میکنن من همیاریش میکنم من ازش دفاع میکنم لیکن مدتی نمیگذره تا اینکه ورقه بن هم فوت میکنه حالا در بعض از روایات اومده در بعض از روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که ورق ابن نفل پوت میکنه غمگین میشه و میره بالای کل خودشو پرت بکنه این روایت ها در صحیح بخاری اومده لیکن امام بخاری خیلی دقیقه خیلی دقیقه اصل این روایت در صحیح بخاریه نقل میکنه از زهری زهری از عربه و عربه از عائشه رضی الله عنها با این اثناد. لیکن وقتی که به آخر میرسه و بلغنا میگه میگه از بلاغیان از اخباری که اسناد نداره ظهری نهو کنید دو نفر دو نفر نگفته که صحابی کی بهش گفته و نگفته که تابعین کی بهش گفته مشخصی میگه که به ما بلاغ شده گفته شده حالا کی گفته چطور گفته مدرکی روش نید. ما هم گفتیم اساسمون مدرکه قل هات وبرهانکم ان کنتم صادقین برهانتون دلیلتون رو بیاری یعنی هر چی حرفی زده. کی گفته چطور گفته و به چه حالتی؟ باید مدرک داشته باشی و با اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی‌خونه. الان به پیامبری اردوی شده داد. خودشو بر بالای کوه خودکشی بکنه خودشو پرت بکنه خیر حاشیه و هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم این کاری نخواهد کرد و با خودش هم اجازه چین این کاری بکنه. خب می‌که بالا خواسته خودشو پرت بکنه بعد جبرئیل اومد گفت که نه تو پیامبر خدا هستی میگه سبب آن خواسته خودشو پرت بکنه. جبرایل اومد گفت که تو رسول خداوندی خب لیکن ما گفتیم کافی که ما بدونیم این روایت در خود بخاری هم متصل نیست و این روایت اصلی نداره و ضعیفه. از مراتیر امام زهری هست که با وجود امامتش ما نمیتونیم قبول بکنیم چون اسناد و مدرکش نگفت خب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که ورقب نفل فوت میکنن. واحی به طریقه های دیگری میاد برش القاب میشه یا در خوابه که مثل روشنایی صبح میبینه اون واقعی که میخواد روخ بده اون چیزی که خداوند ازش میخواد یا بلفرض معمولیت خاصی که خاص میخواد بهش بده مثل روشنایی صبح در خوابش میاد یا اینکه جبرئیل به صورت حقیقیش میومد و یا اینکه شخصی میومد جبرئیل به شکل یک شخصی میومد و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میکردند زید و ثابت می‌بیاد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان وحی نازل میشد و پایشان روی پای من بود قام می‌خواست در زمین فرو بره و قام بشکنه اینقدر وقتی که وح بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد اینقدر سخت و دشوار بود خیلی با اون یعنی با اون مشقت و اون سختی وح وقتی که نازل میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست زبانشو تکن بده ولی ها تعجل به قرآن تا آخر آیات که میگه خداوند خدا بهش میفرماین عجله نکن زبانتو تکن نده درست این قول سنگینه لیکن ما اون قلبت را بهش آمادگی میدیم تا به راحتی اونو حفظ بکنیم به راحتی بدون هیچ مشقتی بدون هیچ سختی بردودی خداونده نباید راموش بکنه بس خداوند مهیا کرد اون شخصیت والا وارسته اون شخصیت بزرگ با اون عظمتش تا بتونه وحی بزرگ خداوند را تحمل بکنه کلام خداوند را تحمل بکنه تحمل کلام خداوند شخصیت بزرگی رو میخواد بعضیها استفاده کردن از همین روایاتی که هست رسول الله رفته به غار و نمیدونم از قبل از بعثتش کنج خلبتی را برای خودش گرفته برای اینکه که عبادت بکنه گفتن که بله انسان میتونه با گوشه‌گیری و نمیدونم با عزلت میتونه به درجه پیامبری برسه والله رسالت ویژگی خاصی هست از طرف خداوند که خداوند هر کسی را بخواد انتخاب میکنه و نبوت و وحی با رسالت محمد صلی الله علیه و سلم خاتمه پیدا کرده دیگه پیامبری بعد از ایشان نخواهم اومد همونطور که خداوند خاتم النبیین در قرآن میگه خاتم النبیینه دیگه پیامبری بعد از ایشان نیست این قول ها و این خرافات های که در کتاب های نمیدونم ادبیات ما میخونیم و در کتاب های مدرسه که ما بیش در در ما خوندیم که بله انسان می‌تونه با ازلت و گوشگیری به درجه پیانبری برسه یا به درجه مهدویت برسه یا به درجه خدایی بعضی هم ادعا کردن که گفتن ما حقیم و خدا در ما حل شده حاش و خداوند به این عظمتی بیاد در مخلوق به این ریزی مثل ما, جا بگیره. ما خداوند بزرگتر از اینه که ما در در مخلوقی مثل ما جا بگیرن ما گفتیم در بحث عظمت, عظمت خداوند که خداوند یک مثال جالبی می اصلا یک می در برای عظمت خداوند رسول صلی الله علیه و سلام تمامی مخلوقات آسمان ها و زمین ها در مقابل کرسی خدا مثل یک حلقه در زمین پهناوره در مقابل کرسی تمامی آسمان ها و زمین ها کهکشان ها یعنی ما اگر خودمون در مقابل یک زمین حساب بکنیم یک ذره ریزی بیشتر نیستیم هر با حافی ما بلاتر میشیم. چه برسه با حافظه ما بالاتر می‌ریم بیشتر می‌شیم چه فرست با آسمون‌ها و زمین‌ها چه فرست به خورشید خورشید که چندین میلیون بار از زمین بذوق کرد حافظی میگه به کهکشان راه شیری و کهکشان‌های فلان و فلان که بی‌انتهاست همه‌ی این‌ها در مقابل کرسی خداوند یک حلقه کوچک در یک سرزمی، سرزمین سرزمین پهناور دریای دللوتون در نظر بگیرید یک حلقه کوچک انگشتری کوچکی در آنجا به اندازید ببینید به حساب میاد نمیاد. میاد کرسی خداوند در مقابل عرش خداوند مثل همین حلقه در یک سرزمین پهناور همه اینها در کف دست خداوند در روز قیامت و خداوند میفرماید این المتکبرون این المتجبرون کجا اونایی که دیدن کجا هستن اون جبارها اون مغرورها کجایند که نخواستن منو بپرسن نخواستن من رو بشناسن خب خداوند به بزرگی آیا میتونه در مخلوط به این ریزی جا بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلام روزی که, که خدا هستن روزی رو خدا درشون حل شده تینک ما بیام ادعا بکنیم ما خدا شدیم و ما مهدی شدیم ما پیامبر شدیم خیر هیچ وقت انسان نمیتونه به خدایی درجه خدایی برسه و هیچ وقتم این ریزیش و این کوچیکیش جایگاه خالق و خالق رستگار خالق نیست خب قصه ادامه داره قصه رسول الله صلی الله علیه و اولین کسانی که ایمان میارن بعد از خدیجه علی ابن نبی طالبه از بچه های یا از, از نوجوانان همونطور که در کتاب های سیرت اومده از نوجوانان علی رضی الله عنه اولین کسانی هست که ایمان میاره بعد از اونم او بکر صدیق از مردان علی رضی الله عنه در اون زمان ده سال شده در سبق روایات صحیح اومده من گفتم خیلی از روایات هست ضعیفه. در بحث مثلا برگذدگی رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزهای اومده که رسول الله صلی الل ابوبک بود که او را نزد براقب نوفل اومد نه هیچ کس این روایت ها قابل قبول نیست ابوبک و اسلام آوردنش نیازی به روایت ضعیف نداره منزلتش مکانتش پسد همچینی علی رضی الله عنه بعضی اومدن و اردن در کتابه های بله علی رضی الله عنه 7 سال قبل از همه مسلمان ها اسلام آورد با چه عقل این روایت ها میخونه؟ با کدوم منطقی که علی رضی الله عنه ما فاضله علی از اینه که ما بخوام بیام الان یه چیزهای دروغی بهش نسبت بدیم نیازی نداره چه نیازی هست بزرگی این شخص عظمت این شخص که ما بیام الا بگیم که بله هفت سال قبل از همه مسلمان ها ایمان آورد ابو کجا رفت فلان کجا رفت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه ابو بکر نیاز نداره و نه علی رضی الله عنه هر دو تا اسلام وردن. مهم اسلام آوردن مهم ایمان آوردن مهم خالص بودن به خداوند مهم صادق بودن در مقابل وحی خداوند همه اینها ایمان آوردند غیر, غیر از اصحاب زیادند بلال و بگیر مصعب و بگیر نمیدونم عمار و فلان همه قصه ها خواهد اومد از جمله روایت هایی که هست در ضمن اسلام آوردن اصحاب قصه سعد بن وقاص سعد سعد بن وقاص وقتی که اسلام میاره مادرش قسم میخوره حالا نگاه بکنیم الان این درس ها ما گفتیم از قطعه و از را این سیرات باید درس ها بگیریم در سمروزمون از درسای سیرت نبوی با این قصه خاتمه میدیم سعد بن مقصد وقتی که اسلام میاره ایمان میاره مادرش قسم میخوره که نه آبی بنوشه و نه غذایی بخوره قسم میخوره که از خانه بیرون نیاد تا اینکه کافر بشه سعد بن مقصد و رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن سعد راضی نمیشه بر اسلامش استوار و پایدار باقی میمونه صحابه ما چینین ماسهحون چین شناختیم نه این که بعض آن میگن وکس وقتی که رسول الله فوت شد نمیدونم مرتد شدن از اسلام خارج شدن مگر سه نفر ابوذر و سلمان و علی رضی الله خیر صحابه چینی بودن با خاطر مادرشون نیومدن اسلام رو رها بکنن. نیومدن کلمه این را بگن با خاطری که مادرشون غذا بخوره. مادرم مادرمبیمیره ولی اسلام هم خدا زیر پا نگذارند نگاه با خدا از همیش بزرگتره برای اصحاب. خداش رو نمیخواد زیر پا بذاره برای الله خداش رو نمیخواد برای مادر زیر پا بذاره بله خدا را شناختن ایمان در قلبش نفوذ کرده این خداشناسیه تا اینکه ما فرزندانش فرزندان اون مادر سعد بن وقاص اصرار میکنن به زور بیشان آب میدهن آب مینوشنن بله آب را مینوشنن و تا اینکه الله قصه اش خواهد اومد که اسلام میاره نه میاره در قصه در قصه ها در امتداد بحث خواهد آمد این خلاصه ای بحث امروزمون و سبحانك اللهم وبحمدك و سبحان ربك و الله على محمد وعلى اله محمد